حدیث 24 فرموده رسول صلی الله علیه وسلم اسباغ یعنی کامل شستن یعنی اعضای بزور را کامل بشورید درست وزور بگیرید یعنی ما این حدیث را دو جا داریم نقش شده الله ها شاید بیشترم باشه ولی خب من اون دو جایی که یادم هست یکی حدیث ابو حریره هست که با اصحاب و یاران که میبینن بوزور میگیرم که ویلی اعقابی نر صمت النبی صلی سلام عل اسبغ الوضوء هي حديث الدقاري حديث عبد الله بن عمر حس باخلافين نكبه باخلافين كما تجا بجاهس اونجا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه ان بعض از اصحاب پشت پاششون سن شده رسول الله صلى الله عليه وسلم با آنها خطاب میکنه و میگوید ويل للعاقبه من النار اسبغ الوضوء وای بر کسانی که پشت پاهاشون نشوستان درس وضو بگیرید و نماز وضو را درست خب این شصن اعضای وضوح هست چون شرط صحت نماز صحت وضوح هست این اگر وضوح درست نباشه نماز درستی نیست و اگر نماز درست نباشه ایمانمون درستی بین رجالی و بین شرک ترک الصلاه من ترک فقط کفر و اشراک او که مقال علیه السلام بین شخص و کفر یا شرک نمازه کسی که ترک بکنه دارد شرک یا کفر شده پس باید موازه باشیم نمازمون درست بخونیم چون شرط صحت ایمان ما هست و درست وضو بگیریم چون شرط صحت نماز ما هست. با درش دقت بکنیم این عبادت ها رو درست انجام بدیم نه اینکه وسواس داشته باشیم. اگر در وسواس افتادیم اگر ما اوصوی را بیشتر از اندازش یا با تکرار بیشتری یعنی بر عددش بی بیشتر از سه بار وارد نشده کسی بیاد چار بار بشوره اصراف کرده در آب اصراف کرده در وضو اون شخص گناهکاره شخصی بالاتر از کعبش یا از آرنج خودش بالاتر بشوره اون شخص گناهکار شده چون خلاف سنت رسول داره عمل میکنه بر خلاف حدیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون رسول صلی الله مسامون وضو گرفت تا را یاد داده و نباید اسراف بکنیم و نباید از اون حدش تجاوز بکنیم از اون حدی که تعیین کرده رسول الله صلی الله و سلم در وضو گرفتن پس اینا باید درش دقت بکنم چون شاید شیطان مرا وسوسه بکنه در وسواس بندازه و به خاطر اینکه وسواس داریم هزار را چند بار بشوریم بیشتر از اون تعدادی که اومده چون رسول الله صلی اومده با یک لیوان اصلا وضو گرفته مهم دست کشیدن به عذاب بعد از آب پاشیدن هست انسان دست بکشه و آب برسه و اینکه آب زیاد ریخته بشه این شرط نیست شرط صحت وزو نیست شرط صحت وزو درست شستن اعضای وزو هست هرچند که آب کم باشه ولی بیشتر از سوار شستن اسراف در اون آبه از جمله مسائل که باید من از بابت ذکر میگم از کار رو یاد بگیریم خصوصا از کار بعد از وضوع رو یاد بگیریم اللهم جلیم تبامین و جلیم مطاهرین و دیگر از کاری که وارد شده که جز آداب وضوع هست خصوصا مسواک زدن قبل از وضوع یا بعد از وضوع لولا لنشوق علا امتی لمرتون بستوه که عند کل صلاح و عند کل وضوع در هر دوتا روایت ما داریم وضوع گرفتن برای یک واجبی واجبه ملایت واجب و بی واجب یعنی نمازی که واجبه با اون یعنی اون چیزی که برای اون شرط صحت اون نمازه اون چیزم واجب میشه به خاطر که نماز واجبه وضو واجبه بر ما و این واجب رو درست انجام بدیم و همون که تو این وضو مون دقت میکنیم تو نمازی که با اون وضوام می خونیمم دقت بکنیم بدونیم اگر نمازمون با خشولی نیست بدونیم که دقیق جایی میلنگیم یه جایی نقص داری یه جایی گرهی تو کارمون هست و کارمون مشکل داره در ارتباطمون با خداوند که باید اصلاح بشه به تقصیر خودمون اعتراف بکنه خسن در بود. الله ما رو ببخشه و هر می که بعد از نماز انسان بعد از اینکه سلام داد بگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله و همچنین اینکه را سوره سلام بعد از هر نماز میگفت اللهم اغفر لي وتوب علي اني توب الغفور سنتک سد بار گفته بشه بعد از نماز اللهم اغفر لي خاطر همین اینکه نقص های اون نماز جبران بشه الله از همه ما ببخشه و بگوید و گناهانم را رو کنه